زانوهایش را تو بغل گرفت و سرش را گذاشت رو آرنجهاش. شقیقه هاش می کوبید. دهنش خشک بود و گلویش هم آمده بود. جوش عرق تنش فروکش نمی گویی گوی زنبوری زیر پیراهنش افتاده بود و تنش را نیش می زد. سر جایش بول می زد. شتابی درونش را می خورد. شتابی برای فرار رو دویدن. تو سرش صدای که رو سندان می دوید. تو سرش جوش می‌خورد که هنوز دارد از خانه‌ای به خانه‌ای میرود و یکی را به خون می‌غلتاند. کارش تو سرش دنباله داشت. هنوز تو کوچه بود و مردم دنبالش بودند. دیگر رو لوکه با شهر و بچاش نخوابیده بود و چشمانش رو هفت برادران دو دو نمیزد. خیلی وقت بود از آنها دور شده بود. صورت زن و بچه‌هایش از یادش رفته بود. از خودش هم دور شده بود. هنوز تو خانه کچل بود و پا به پای زن او از بله های بالاخانه بالا میرفت و حواسش پیش جمعیت تو کوچه بود و میخواست زود کارش را بکند و از آنجا در برود. و زن آغالی کچل غشت بود و پای تخت خواب شوهرش افتاده بود و شیردان بلورین آب اندوانه پول پول شده بود و خورده شیشه تو کف اتاق ریخته بود و او پایش رو آنها گذاشته بود و خون از پاش ول شده بود تبر را رو فرق سر و قلم دست دوتا زن پایین آورده بود و آنها تو خون خودشان قلت می‌خوردند و او آنها را ول کرده بود و رفته بود تو حیات و گربه ازش فرار کرده بود شبهای طوفانی و امواج خورد کننده دریا تو سرش ول شده بود سکان تو مشتهایش شسبیده بود کشتی پرسپولیس مثل پوست گردو رو امواج دریا زیر رو میشد. های دریا را که خوب میشناخت، حالا گمشان کرده بود. هر موجی که رو عرشه خراب میشد، کشتی را تو دل دریا فرومی برد. هیچ کس تو کشتی نبود. خودش تنهای تنها بود. سکان به فرمانش نبود. زورش نمیرسید آن را بچرخاند. هرچه زور میزد مثل اینکه سکان ته دریا گیر کرده بود سخراهای سیاه تیزکی از آب بیرون سرک میکشیدند و تو سینه کشتی فرو میرفتند باد بود برق بود طوفان سیاه بود آسمان به دل دریا رفته بود کشتی میرفت و دل صخرهها و از آن طرف بیرون میآمد موج رو موج میرنبید و کشتی را مثل فرفر میچرخاند و ته آن به ته دریا می‌خورد و از هم متلاشی می‌شد و دکل و سکان و عرشه هر سور و آب شناور بودند و باز به هم میپیوستند و کشتی رو دریا ولو بود از بس فریاد زده بود از گلویش خون می‌ریخت سکان را ول داد و دنبال توفنگش گشت تفنگش آنجا نبود دم خانه شیخ بود یکی از میان جمعیت با خنجر به او حمله برد و خنجر را تو سینهش غلاف کرد و او خنجر را بیرون کشید و دوید. از روپل کشتی پرید پایین رفت دنبال توفنگش. شر و بچه ها رو تخت پارهی رواب ولو بودند. خواست خودش را به دریا بیاندازد و آنها را برو باید. پایش به کف کشتی چسبیده بود و کنده نمیشد. تو اتاق ناخدا بود. یک سگ گنده، پشت میز ناخدا نشسته بود و داشت دوربین بلند ناخدا را می جوید. از آنجا بیرون پرید شیرو دنبالش می دوید. رفت دو اتاق وردست دست ناخدا. کفتار چرکی با دهن خونالود آنجا تو رختخواب خوابیده بود. بالش و رویه تشک غرق در خون بود. کریمه ها چمزه با تن آشولاش که کفتار نیمتنش را خورده بود و کفتار افتاده بود و تنش کرم گذاشته بود و از حلقش خون میریخت. با مردک انگلیسی که آمده بود تو دکان آساتور توتون بخرد دست به یقه شده بود و سر او را به سر آساتور کوبیده بود و آساتور رفته بود تو کوچه و فریاد زده بود بیا این که خونی اومده تو پس دو من قایم شده و تمام فشنگهاش رو تو سینه آساتور و مرد انگلیسی خالی کرده بود کوه موجی رو کشتی خابیدان را ته دریا برد همه چیزی را آب رفت و کشتی تای دریا لای سخراها گیر کرد. کف دریا چراغانی بود. ماهی ها مثل شعله شام سوسو می زدند. درخت های کف دریا مثل کرم شبتاب می درخشید. یک کوسه گنده به او حمله کرد و یک پایش را از زانو بلید و خون تو آب فلو شد. تمام تنش میسوخت دکل کشتی را گرفت و رفت بالا دکل کشتی خار درآورده بود و کف دستهایش خونین شده بود تو دست و پایش سیم خاردار بلو بود و دست و پا و تنش خونین شده بود سر دکل عذاب بیرون بود تفنگش سر دکل آویزان بود تفنگ را برداشت رو یک فوچ سگ و کفتار و گرگ مشق تفنگ و یک گراز پیر آنها را مشق تفنگ میداد. گراز رخت توفنگچی های حکومتی تنش بود و تکمه های شیر و خورشیدی رو لباسهاشان برق میزد. زد. تا گرگ شهر و بچه ها را دوره کرده بودند. توفنگ کشید که گرگ ها را بزند. فشنگهایش تمام شده بود. خاست خودش رو به شهرو برساند نمیتوانست راه برود بعد همه تو توپنجی حکومتی شدند بعد قوطی های کنسرو تو قفسه دکانه آساتور روسرش خراب شد و زیر آنها دفن شد و شیشه های مشروب شکست و تو سیلاب مشروب شنا میکرد و دورورش قوطی های کنسرو رو سیلاب شناور بود. چنان مشت قایمی تخت سینه جوانک کوبید که جوان جا در جا میان خرت و خورتهای تو سرپله افتاد و صندوق شیشهای خالی مشروب رو سرش خراب شد. هلکی از جایش جست و تفنگش را از سر سوک دیوار برداشت و لوده آن را رو, رو سینه پسرک گذاشت. اگر از جا بخوری سرخت میکنم. محمد خیلی آهسته و با التحاب گفت و جوانک مردوار، روز زبیل ها افتاده بود و تکان نمی خورد و با چشمان کور و باز بیحالتش به محمد خیره شده بود و لبهایش می لرزید. یک کلاه لگنی چوپانبه‌ای موریان خورده از بالای ارگ غلطیده بود و رو شکم جوانک افتاده بود. محمد با خشم، بالوده تفنگشان را به کناری زد و اسماعیل، آشپز آساتور را به همان نگاه اول شناخته بود و نمیدانست چطور شده که اسماعیل پایش تو سرپله باز شده بود. صورت جوانک کبوت شده بود و چشمانش به تاق افتاده بود و پوست صورتش میلرزید و دندانهایش به هم می‌خورد. باز محمد گفت: جواب نمیدی؟ بگو ببینم، اینجا اومدی کار کنی؟ اسماعیل به او نگاه می‌کرد. تنش میلرزید. محمد تفنگش را رو از روی سینه پسرک برداشت، آن را گذاشت سوک دیوار و خم شد، گریبان اون را گرفت و بلندش کرد و کوشید تا او را روپاها وایساند. اما اسماعیل شل بود و نمیتوانست اصروبهاش بند شود به نظرم از حال رفته گمونم اونم خیلی سخت زدمش بعد جوانک را بغل زد آورد گذاشتش همان جایی که اول خودش نشسته بود و تکیش را داد به در بام خودش بالا او ایستاده بود جوانک ناگهان تکانی خورد و گردنش روشانه اش افتاد بعد دستهایش را گرفت و دلش و تا او خشكه زد محمد پهلویش چندک نشست و گردنش و شانههایش را مالید جوانک آهسته ناله می کرد. محمد به او گفت نترس کاری ندارم بگو ببینم گیبت گفته من اینجا هستم برای چه اینجا اومدی اسماعیل خاموش بود سرش تکانی خورد و چشمانش به صورت محمد افتاد چهره دردناک التماسا میزی داشت آن یک چشم کورش چهره غم انگیزی به او داده بود ناله لرزانی از گلویش بیرون پرید و تو دهنش خفه شد خیس سرخ شده بود و مایچه های چهرهش میپرید و از گوش لبش کف بیرون زده بود محمد هول شد نمیدانست چطور شده که جوان به سرپله آمده بود و چرا او را زده بود و چرا اینقدر او را سخت زده بود شاید بند دلش باره شده، خیلی بد شد، شاید رفته خبر داده، بعد گوش داد، هیچ صدایی نبود، تون تون شانه‌های او را مارش می‌داد. داد، نه ترس من کارید ندارم اسمایل خاموش بود و چشمانش دردناک به صورت محمد خیره شده بود و با آنها به او التماس می‌کرد. شکل محمد از کانون چشمش جسته بود و او را تار و لرزان می‌دید. باز محمد گفت نه ترس من کاریت ندارم چرا اومدی بالا؟ کی بهت گفت من اینجا چانه جوانک لرزید خواست حرف بزند نتوانست محمد می دانست درد می کشد اگر خودش حرف زدن او را تو دکان نشنیده بود خیال میکرد کرد گنگ است اما حالا می دانست ترس و درد زبانش را بند آورده محمد گفت میخوایی برم برات یه چکه آب بیارم بخوری؟ جوان با سرش اشاره کرد که میخواهد. باز محمد پرسید، پایین کسی است؟ جوان با سرش اشاره کرد که پایین کسی نیست و درد از آبش میداد و تو نافش پیچ میخورد و باز چند تا خشک زد و آب لزجی از دهنش سرازیر شد. محمد فوری تفنگش را برداشت و رفت پایین. جوان، به در سرپله تکیه داده بود و سرش روشانه اشیاله شده بود و نفس نفس می زد. محمد زود با کاسه آب برگشت و همچنان که هنوز تفنگش تو دستش بود کاسه آب را گذاشت به دهن جوان اسماعیل آب خورد و آب ریخ رو پیراهنش و بعد آب جست گلویش و صرفه کرد و چهرش سرخ شد و بنفس شد و نفس خفه بلندی کشید و سرش رو گردنش راست شد و پلکای چشمش تکان خورد و آب از چشمانش درآمد و به محمد نگاه کرد و نینی های چشمانش تکان تکان خورد. حال جا اومد؟ محمد با مهربانی پرسید. خوب شدم. اسماعیل با صدای گرفته نفس پس رفته ای جواب داد. محمد کاسه آب را گذاشت به دهن خود و آب را تا تخ خورد. مدتی بود تشنه بود و یادش نبود. حتی وقتی رفته بود برای اسمایل آب بیاورد، یادش نبود که تشنست و آب نخورده بود آنگاه تفنگش را گرفت تو زانوش و برابر اسمایل رو جعبه شیشای خالی نشست و گفت حالا تعریف کن چطور شد که اومدی بالا؟ صدای تو گلوی اسمایل لوله شد و بیرون ریخت من نمیدونستم تو تا اینجای صدات می اومد، صدای، صدای دعوا می اومد اومده ببینم چه خبره به خیالم، به خیالم داز اومده. آبی که خورده بود حالش را جا آورده بود، اما همچنان دلش آشوب میکرد. تو منو میشتاسی؟ محمد به آرامی و مثل اینکه بخواهد بچه را گول بزند پرسید. جوان خاموش بود، نفس نفس میزد و پی در پی پیتوف خودش را غورت میداد و تنها نگاه ترک خوردهش تو چهره محمد میتابید. راست بگو، تو منو میشناسی؟ دوباره محمد پرسید شاید همونی باشی که میگن آن چشم جوان که کور نبود تو صورت محمد دوید توان آن را نداشت گرفش را تمام کند نگاهش گم و بیم خورده بود، نیمه کاره بود محمد سرش تکان داد و گفت درسته، من همونم که میگن حالا میخوای چه کار کنی؟ هیچی؟ اگه به امکار نداشته باشی میخوام برم با این خوراک ارباب را آماده کنم زاره حالا میادش بالا نهار بخوره جوانک گفته و خودش را جمع اجور کرد که برود آسطور میدونه که من اینجا؟ محمد یک دستی زد نه، هیچ نمیدونه، اگه بدونه بد میشه شاید بره خبر بده، آخه او که مثل ما مسلمون نیست، ارمنیه. نباید از جاد تکون بخوری تا بیاد نارش بخوره و بره بعدش چی؟ بری خبر بدی؟ من برم خبر بدم بله؟ من وقتی اومدم بالا تو هنوز خواب بودی و تو خواب داد و فریاد میکردی اگه من میخواستم برم خبر بدم همون وقتی تو خواب بودی میرفتم خبر میدادم چرا نرفتی؟ مگه تخم بابام نیستم که برم خبر بدم حالا میخوای شکار کنی؟ خواهم کمکت کنم که از اینجا فرار کنی تو کوچه خیلی توفنگچی گذاشتن خیلی؟ مثلا چندتا؟ نه، ده بیست تا بیشتر نیستن نسبشون تنگسیرن تنگسیر باشن؟ به من چه؟ آخه تو خودت هم تنگسیری کارت که دسته خودش را نمی بوره. مردم چی میگن؟ میگن شیر محمد چند تا ظالم که خون مردم رو شیشه کرده بودن زده به نظرم اسم تو شیر محمده نیست؟ تو چرا میخوای به من کمک کنی؟ نمیدونم اما تو خیلی جگر داری این کارا از همه کس بر نمیاد من که تو رو کتک زدم زده باشی خواب بودی تو خواب حرف میزدی تو خواب می میکردی از ترس جونت بود که منو زدی اما خیلی غایم زدی نفسم پس رفت میخواستم بمیرم اما واکی نیست هنوزم دلت درد میکنه؟ یه کمی، اما خوب میشه گت میشم یادم میره دندانهای درخشان اسمایل به خنده بیرون افتاد برو خدا رو شک کن که نمردی خیلی خوب حالا بزار برم نهار آساتور بدم یه چیزی هم برای تو بیارم بخوری نه، من گشنم نیست نمیخواد بری همینجا باش همینجا باشم تا کی؟ تا شب که من از اینجا برم باید هم اینجا پلوی من بمونی چرا تا شب صبر نمی ارباب که نهارش خور رفت و تو یه یه دستصد لباساش میارم تنت کن و در رو کسی تو کوچه نمی رخت و رببط تن من نمیره نمیبینی من چقدر گندهام؟ گذشته از من این تفنگم کار کنم؟ هر دوشان خندیدند و محمد از جوانک خوشش آمده بود و خوشحال بود که حالش جا آمده بود توفنگدم اینجا بزارش نشونی بده من بعد برات میارمش من از توفنگم جدا نمیشم تو خیلی بچهی چند سالته؟ نوزده سال شادم بیست سال نمیدونم یادم نیست عقلت برای سنو سالت خیلی پار سنگ ور میداره اره کجایی؟ اهل لنگه بندر لنگه میدونی کجاست؟ صد دفعه با جهاز از پیشش رد شدم توشم رفتم هم لنگه رفتم هم بندر عباس حالا بزار برم نمیشه باید تو شب که من از اینجا میرم بیشه من بمونی آخه هربا بالا میاد بالا وقتی ببینه من نیستم دنبالم میکرده شایدم بیاد بالا اون وقت خیلی بد میشه داد و فریاد راه میندازه مردم میریزن میگیرند تو حرف من قبول نداری؟ نه آخه اگه من تو رو لط بدم مردم تکت کم میکنن تو هر خونه ای که میرفتی پناهت میدادن و کسی جرات نداشت لط بده. همه مردم پشت دن از کجا میدونی؟ من امروز صبح که رفتم بازار مای فروشا دیدم مردم همهشون برا دعا می کنن اون وقت یه توفنگچی حکومتی گذاشته بودن دو بازار مای فروشا مردم دارورش گرفته بودن مسخرش میکردن و مطلق بارش میکردن و می مگه شیر محمد شبه که تو بتونی ویش. اون وقت مردک توفنگچی از جا در رفت و گفت من غلط میکنم که بخوام تو رو شیر محمد بکشم من اصلا شیر محمد رو نمیشناسم چطور دیدی نه؟ حرفش که تمام شد سرش رو انداخت زیر میخوام بهت بگم من هنوز قطارم پر از فشنگه اگه بخوان بگیرنم تا دونی آخرش تو دو تنشون خالی میکنم اولیشون تویی. اون وقت خون را میفته و مردم بیگناه کشته میشن و خونشون به گردن تو میفته من اونایی که خودم دلم میخواست بزنم زدم و دیگه به کسی کاری ندارم اما اگه کسی دیگه به من کار داشته باشه پای خودشه اگه کسی هم کشته بشه تقصیر توست حالا پاشو برو من غلط میکنم حالا پاشو برو دیگه هم پات اینجا نذار تا شب که شد خودم یواش میام راهم و میگیرم و میرم تو را به خدا بزار کمکت کنم تو کجا تو توفنگی گذاشتن هر وقت بری من حرفی ندارم اما بزار من کمکت کنم بعد پا شد و خودش را از میان هنزر پنزرهای تو سرپله بیرون کشید و از پله ها رفت پایین و نگاه سوزنده محمد دنبالش بود و اسماعیل دستهایش را به دیوار گذاشته بود تا زمین نخورد وقتی میخواست از خم پلکان سرازیر بشود محمد به او گفت خاطر جمع باش که من خودم بهتر میتونم فرار کنم تو کاری نداشته باش اما این رو بدون، اگه یک کلمه به کسی گفتی که من اینجام، زندت نمیذارم. صداش درسناک بود و اسماعیل برگشت به او نگاه کرد و سرش را تکان داد. یعنی خیلی خوب.